مخشه سوم، بند اول زندگی سقرات در سال 469 قبل از میلاد در آتن به دنیا آمد که پدرش سفرونیسکوس مجسم ساز و مادرش فاینارته قابله بود است سقرات در جوانی شاگرد فیلسوفی به نام آرخلاوس بود و از آن پس به تمرین فلسفه پرداخت. بیان که هرگز چیزی در این باب به نگاه. او برای درسهایش پول نمی‌گرفت و بنابراین به ورطه فقر درقل دید. گرچه چندان علاقه‌ای به امور مادی نداشت. در تمام سال ردابرتن می کرد و تقریبا همیشه پا به بود. گفتند که متولد شده بود تا کفواشون را بیازارد. در هنگام مرگ متعهل و پدر پسر بود. کسان همسرش به شدت تندخو و بداخلاق بود. وقتی از سقرات پرسیدند چرا با او ازدواج کرده جواب داد که پرورش دهندگان اسب باید با لجام گسیخت ترین و پرشور ترین اسب تمرین کنند. او بخش امدهی از وقتش را در خارج از خانه به گفتگو با دوستان در اماکن عمومی آتن می‌گذراند. آنها حکمت و شوخ طبعی او را می ولی ادهی بسیار کمی میتوانستند توانستند قیافه سقرات را بستایند. او کتاقد، ریشو و کچ و هنگام راه رفتن به طرز عجیبی میلنگید و چهره‌ای داشت که آشنایانش آن را به انواع گوناگونی به سر خرچنگ، ساتیر یا جانوری عجیب و غریب تشبیه کردند. دماغش پهن و لبانش بزرگ بود و چشمان برآمده و زیر یک جفت ابروی درهم ریخته قرار داشت. ولی شگفت آورترین ویژگی او این بود که عادت داشت به آتنی ها از هر طبقه سن و سال و حرفه ای نزدیک شود و از آنها بی و سریح سوالاتی بپرسد. بیان آنکه نگران باشد که او را خودمهور یا اعصاب خورد کن بنامند. و از آنها میخواست با دقت به او توضیح دهند که چرا به برخی عقاید مبتنی بر عرف عام باور دارند و به او بگویند به نظر آنها معنای زندگی چیست؟ به قول یک سردار شگفت زده، هرکس با سقرات گفتهگویی آغاز کند، موضوع بس هرچه باشد سقرات به وسیله سوال و جواب او را چندان به این سو و آن آنسو میبرد تا به جایی برساند که ناچار شود درباره زندگی کونمی و گذشته خود به سقرات حساب پس بدهد. در اینجا نیز سقرات دست از سر اوبر نمی دارد. پیش از آنکه او را کاملا بیازماید و احوال درونیش را در برابر دیدگانش قرار دهد. آب و هوا و معماری شهری آتن به این عادت او کمک می کرد. آتن نیمی از سال گرم بود که این امر فرصت گفتگو با مردم کوچه و بازار بدون معرفی یا مقدمات تشریفاتی را افزایش می داد. فعالیت هایی که در زمین های شمالی پشت دیوارهای گلی دلگیر و کلبه پردود انجام می شد به هیچ سرپناهی در برابر آسمان های خیرخواه آتن نیاز نداشت. این پا و آن پا کردن در میدان عمومی شهر زیر ستون‌های رواق نقاشی شده یا رواق زئوس الیوتریوس و سخن گفتن با ها در اواخر عصر یعنی بهترین ساعتها بین امور عملی و واقعی نیمروز و تشویشها و استرابات شبانه کاری متداول بود. اندازه شهر سرور و نشاط را تضمین می‌کرد. حدود دویست و چهل هزار نفر در آتن و بندرش میزیستند رفتن از یک سوی شهر به دیگر انتهای آن یعنی از پیرائیوس تا دروازه آیگیوس بیش از یک ساعت به طول نمی انجامی. ساکنان شهر میتوانستند احساس کنند مثل شاگردان مدرسه یا مهمانان عروسی به هم مرتبط هستند تنها جزم اندیشان یا میخارگان نبودند که در ملع عام با قریبه ها به گفتگو می اگر ما از شک کردن به درستی وضعیت موجود خودداری می‌کنیم، دلیل این امر غیر از آب و هوا و اندازه شهرهایمان در درجه اول این است که امر مورد پسند همگان را با امر درست یکسان می‌پنداریم. فیلسوف پابرهنه سوالات زیادی مطرح می کرد تا نشان دهد آنچه مورد پسند همگان است، معقول است یا نه. بند دوم سلطه ای آم به نظر اده زیادی این سؤالات دیوانه کننده بود. برخی او را مسخره می کردند. اده کمی می او را بکشند. در نمایشنامه ابرها که اولین بار در بهار 423 قبل از میلاد در تئاتر دیونوسوس اجرا شد آریستوفان به آتنیها کاریکاتوری از فیلسوفی را ارائه کرد که بدون بررسی گستاخانه و مشروه منطق عرفه آم آن را نمی بازیگر نقش سرعت در سبدی آویزان از یک چنگک روی صحنه ظاهر شد. زیرا ادعا می‌کرد که فکرش در ارتفاع بالاتر بهتر کار می‌کند. او آنقدر در افکار مهم قوته ور بود که فرصتی برای شستشو یا انجام دادن کارهای خانه نداشت. بنابراین ردایش بدبو و خانش پر از حشرات موزی بود. ولی حداقل می‌توانست به حیاتی‌ترین سوالات زندگی توجه کند. این سوالات عبارت بودند از کک چند برابر طولش می تواند بپرد و آیا پشه ها از راه دهان وزوز می کنند یا از راه مقعد؟ گرچه آریستوفان به جوابهای های سقراط نپرداخت ولی تماشاگران باید به اندازه کافی به نامربوط بودن این سوالات پی برده باشند. آریستوفان انتقاد معروفی از روشنفکران بیان می کرد. روشنفکران با سوالاتشان بیش از کسانی که هرگز جسارت تحلیل مسائل به شیوهی نظاممند را پیدا نکردهاند از دیدگاه های معقول فاصله می‌گیرند. جدا کردن نویس و فیلسوف نوعی ارزیابی مقایسه‌ای بود که کافی بودن تبیین‌های عادی را نشان میداد. به نظر آریستوفان، در حالی که مردم عاقل می‌توانستند با دانستن این مطلب آسوده باشند که کک ها بسیار بیشتر از طول خود می‌پرند و پشهها بالاخره از یک جایی صدا در می آورند، سغرات به بدگمانی آمیز به ارفعام و برخورداری از اتش بیش از حد برای بدیل های بیمعنی و پیچیده متهم بود. جواب سقرات به این اتهامها ممکن بود این باشد که در برخی موارد، گرچه شاید نه موارد مربوط به کک ها، ارفعام بررسی ژرفتری را ایجاب می کند. پس از گفتگوهای کوتاه با بسیاری از آتنیها ها ناکافی بودن شگفت آور دیدگاه های پسند درباره چگونگی زندگی خوب را آشکار کرده بود. همان دیدگاه هایی که به نظر اکثر مردم به هنجار و بنابراین تردید ناپذیر بودند و همان نابسندگی هایی که رفتار مطمئن طرفدارانشان هیچ نشانی از آنها نداشت. برخلاف خلاف آرزوی آریستوفان، به نظر می آنهایی که با سقرات صحبت می به ندرت میدانستند درباره چه چیزی سخن می بنده دو گفتگو افلاتون در لاخص چنین روایت می کند که سقرات بعد از ظهر روزی در آتن با دو سردار محترم نیکیاس و لاخص روبرو می شود. این سرداران در جنگهای پلوپونزی با ارتش اسپارت جنگیده مرده احترام ریش سفیدان و ستایش جوانان شهر بودند. مقدر بود که هر دو در مقام سرباز بمیرند. لاخص در جنگ مانتینیا در 418 قبل از میلاد، نیکیاس در لشکرکشی بدفرجام به سیسیل در 460 قبل از میلاد. هیچ تصویری از این دو باقی نمانده. گرچه میتوان تصور کرد که ممکن است در هنگام جنگ شبیه دو اسب سوار قسمتی از کتیبه پارتنون بوده باشند. این سرداران به عقیده مبتنی بر عرف آم باور داشتند. آنها عقیده داشتند که برای شجاع بودن شخص باید عضو لشکر باشد. در جنگ پیش کند و دشمنان را بکشند. ولی سقرات پس از روبرو شدن با آنها در زیر آسمان باز، احساس کرد مایل است چند سوال دیگر از ایشان بپرسند. سقرات می گوید، بیا تعریفی از شجاعت ارائه کنیم. لخس میگوید سقراط این کار دشوار نیست کسی که در برابر دشمن مردانه می ایستد و نمی گریزد شجاع است ولی سقرات به یاد می آورد که در جنگ پلاته در 479 قبل از میلاد یک لشکر یونانی به فرماندهی پوسنیاس نایب سلطنه اسپارت ابتدا عقب نشینی کرد سپس شجاعانه ارتش ایران به فرماندهی مردونیوس را شکست داد سقراط میگوید بی گمان شنیده ای که در نبرد پلاته، اسپارتی ها چون با ایرانی ها روبرو شدند، بر جای نیستادند و گریختند. ولی همین که صفحای ایرانیان از هم پراکند، بازگشتند و به شیوه سواران بر دشمن تاختند و از میدان پیروز در آمدند. دوباره مجبور می شود فکر کند و با دومین عقیده مبتنی بر عرف آم پیش می رود. شجاعت نوعی پایداری است. ولی پایداری ممکن است همان گونه که سقراط گفت نتایج زیانباری داشته باشد. برای تمایز گذاشتن میان شجاعت حقیقی و جنون مؤلفه دیگری مورد نیاز است. نیکیاس همراه لاخص به هدایت سقرات میگوید شجاعت نیازمند داشتن دانش است یعنی آگاهی از خوب و بد و ممکن نیست هموار محدود به میدان نبرد باشد. تنها در گفتگوی مختصری در فضای باز، نابسندگی‌های مهم تعریف متداول از یک فضیلت بسیار ستوده آتنی آشکار شد. این گفتگو احتمال عدم توجه به شجاعت در خارج از میدان جنگ و بیتوجهی به اهمیت دانش همراه با پایداری را نشان داد. ممکن است این مسئله ناچیز به نظر رسیده باشد، ولی پیامدهای زیادی داشته است. اگر پیش از این، امیر ارتش فکر می کرد صدور فرمان عقب نشینی به لشکرش نشانه ترس است حتی وقتی تنها حرکت معقول به نظر میرسید این تعریف مجدد گذینه های او را افسایش میداد و او را به ایستادگی در برابر انتقادها ترقیب می کرد. سقرات در منون افلاطون باز هم سرگرم گفتگو با کسی است که به شدت به درستی عقیده مبتنی بر عرفان مطمئن است منون اشراف‌زاده‌ای مغرور است که از سرزمین خود تسالی برای دیدن آتیکا به آتن آمده و درباره رابطه میان پول و فضیلت عقیده ای دارد. او به سقرات میگوید گوید که برای با فضیلت بودن باید بسیار ثروتمند بود و فقر بدون استثنا برخواسته از ضعف شخصی است نه حاصل تصادف و پیش آمد. ما از منون هم تصویری نداریم گرچه با جستجو در یک مجله مردانه یونانی در سرسرای یکی از هتل‌های آتن فکر کردم شاید شبیه مردی بوده که در استخری پرنور شامپاین می‌نوشد منون با اطمینان به سقراط می‌گوید مرد با فضیلت کسی است که ثروت زیادی داشته باشد و بتواند چیزهای نیک را به دست آورد سقراط چند سؤال دیگر از او می‌پرسد سقراط می‌گوید و مقصودت از نیک چیزهایی مانند تندرستی و توانگری است یا سیم و ذر و مناسب دولتی نیز از آن قبیلند؟ منون میگوید. گوید آره، سیم و زر و جاه نیز از آن قبیلند. سقرات میگوید. گوید نمی دست به آن تعریف بی افزایی؟ سیم و ذری که به ادالت و درستی به آید؟ یا معتقدی که آن چیزها را از هر راه به دست آوریم دارای فضیلت می گردیم؟ منون می گوید البته زر و سیم باید به درستی فراهم آید. سقراط میگوید: پس میگویی تحصیل سیم و زر باید با ادالت و خیشتنداری و دینداری یا دیگر اجزای فضیلت همراه باشد. وگرنه تحصیل سیم و زر به تنهایی با اینکه خوب است، فضیلت نیست. منون میگوید: آری، چنین میگویم. سقراط میگوید: اگر کسی از به دست آوردن سیم و زر، آنجا که تحصیل آنها با ظلم و انان گسیختگی همراه است، خودداری ورزد، این به دست نیاوردن نیز فضیلت است. منان میگوید گوید، چونین می نماید. سقرات می گوید، پس معلوم می شود به دست آوردن یا به دست نیاوردن چیزهایی که نیک می شماری، نه از فضیلت آدمی می کاهد و نه بر آن می افزاید. و فقط هرچه با ادالت همراه هست موافق فضیلت هست و آنچه با ظلم همراه هست بدی و رزیلت. منون می گوید، گمان میکنم راستی همین است. در چند لحظه منون فهمید که پول و قدرت فی نفس شرایط لازم و کافی فضیلت نیستند. ثروتمندان ممکن است قابل ستایش باشند ولی این امر بستگی دارد به چگونگی به دست آوردن آن ثروت درست همانطور که فقر نمیتواند به خودی خود نشان دهنده ارزش اخلاقی کسی باشد. هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که فردی ثروتمند فکر کند هایش فضیلت او را تزمین می کنند. و هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که فقیری بپندارد تنگ دستیش نشانه رزیلت است. بند چرا ممکن است دیگران ندانند؟ شاید این مسائل از مد افتاده باشند. ولی اصل اخلاقی نهفته در آنها چنین نیست. ممکن است دیگران اشتباه کنند. حتی وقتی در مناسب مهمی هستند. حتی وقتی از عقایدی دفاع میکنند که قرنها مورد قبول اکثریتی عظیم بوده است. و دلیل این امر ساده است. آنها عقاید خود را به طور منطقی بررسی نکردند. منون و سرداران به عقاید نادرستی باور داشتند. زیرا هنجارهای متداول را بدون سنجش منطقه آنها پذیرفته بودند. سغرات برای نشان دادن عجیب بودن انفعال آنها زندگی بدون تفکر نظامند را با کاری مثل کوزگری یا کفاشی بدون پیروی یا حتی آگاهی از رویه های فنی آنکار مقایسه کرد. هیچ کس هرگز تصور نمی کند که کوزه یا کفش خوب به حاصل شهود محض باشد. پس چرا فکر می کنیم کار پیچیده تره هدایت زندگی خود را میتوانیم بدون تعمل مداوم درباره مقدمات و مفروزات یا اهداف زندگی انجام دهیم؟ شاید به این دلیل که عقیده نداریم هدایت و اداره زندگی واقعا پیچیده است؟ برخی فعالیت های دشوار به ظاهر دشوار به نظر می رسند. در حالی که دیگر فعالیت های به همان اندازه دشوار به ظاهر بسیار آسان مینممایم دستیابی به دیدگاه های صحیح درباره چگونگی زندگی جزوه دومین مغوله و ساختن کوزه یا کفش جزو مغوله اول است. کوزهگری آشکارا کاری دشوار بود. ابتدا باید گل را، معمولاً از گودال بزرگی در دماغه کالیاس واقع در هفت مایلی جنوب آتن به شهر می بردند و روی چرخ کوزهگری می و این چرخ با سرعتی معادل پنجاه تا 150 و در, در دقیقه می چرخی. که این سرعت با قطر کوزه در حال قالب گیری رابطه معکوس داشت هرچه کوزه باریک تر بود چرخ سریع تر می‌چرخید. سپس نوبت به اسفنج کشی پاک کردن برغنداختن و ساختن دسته می رسید آنگاه گلدان را باید با لعاب سیاه رنگی می که از گل پودر مانند نرمی همراه با پتاس ساخته شده بود پس از خشک شدن لعاب گلدان در کوره ای قرار می گرفت و تا 800 درجه سانتیگراد حرارت میدید در حالی که هواکش باز بود گلدان به شدت قرمز میشد که نتیجه خشک و سخت شدن گل و تبدیل آن به اکسید آهن یا Fe2O3 بود بعد در حالی که هواکش بسته بود گلدان را تا 950 درجه سانتیگراد حرارت میدادند و برگ های خیس را برای رطوبت دادن به کوره اضافه میکردند بدن گلدان به رنگ سیاه ماگل به خاکستری و لعاب به رنگ سیاه خاکستری تبدیل می شد. یعنی مگنتیت f o 4 پس از چند ساعت هواکش را دوباره باز می کردند. را بیرون می آوردند و اجازه می دادند تا حرارت به 900 درجه سانتیگراد برسد. در حالی که لعاب رنگ سیاه حاصل از دومین حرارت دادن را حفظ می کرد، بدنه گلدان به رنگ قرمز تیره اولیه باز میگشت. عجیب نیست که تعداد بسیار اندکی از آتنی ها گلدان های خود را بدون فکر درست میکردند. دشواری کوزگری به همان اندازه است که به نظر می رسد. متاسفانه، دستیابی به آرای اخلاقی خوب و مستدل چونین نیست. و در عوض به طبقه مشکلافرینی از فعادیت های ظاهرن ساده ولی در اصل پیچیده تعلق داد. سقراط ما را ترغیب می‌کند که از اطمینان مردم نترسیم مردمی که نمی‌توانند به این پیچیدگی احترام بگذارند و دیدگاه‌های خود را بدون دقتی حداقل به اندازه دقت کوزه‌گر می می‌کنند آنچه بدیهی و طبیعی خوانده می‌شود به ندرت چنین است تشخیص این امر باید به ما بیاموزد که دریابیم جهان پذیرتر از چیزی است که به نظر می‌رسد زیرا دیدگاه‌های تثبیت شده اغلب نه از طریق فرایند استدلال بیعیب و نقص، بلکه از طریق قرن‌ها شفتگی فکری ظاهر شدهاند. ممکن است دلایل خوبی برای شکل و وضعیت فعلی امور وجود نداشته باشد. بند پنجم، چگونه مستقل فکر کنیم؟ فقط به ما کمک نمی‌کند که دریابیم ممکن است دیگران در اشتباه باشند. او روشه ای به ما ارائه می کند که به وسیله آن خودمان می توانیم کنیم چه چیزی درست است. معدودی از فیلسوفان چیزی بیش از حد اقل شعور لازم برای شروع زندگی اندیشمندانه داشتند. ما به تحصیلات رسمی و زندگی مرفه نیاز نداریم. هر کسی که ذهنی کنچکاف و منظم داشته باشد و بخواهد عقیده مبتنی بر عرف عام را بسنجد، می تواند در یکی از خیابانهای شهر شروع به صحبت با یکی از دوستانش کنند و با پیروی از روش سقراتی ممکن است در کمتر از نیم ساعت به یک یا دو عقیده جدید برسد. در تمام مکالمات اولیه و میانی افلاتون می توان روش سقرات برای بررسی عرف آم را مشاهده کرد. و به دلیل پیروی این روش از مراحل منطقی اگر آن را در قالب زبان کتاب آشپزی یا کتاب راهنما ارائه کنیم بیانصافی نکرده هرگاه از کسی بخواهند عقیده ای را بپذیرد یا زمانی که او احساس کند تمایل به تقیان علیه این باورها دارد می تواند از این روش استفاده کند. بر اساس این روش، صحت گذاره را نمی به این وسیله تعیین کرد که آیا اکثر افراد به آن عقیده دارند یا نه؟ و آیا افرادی مهم به مدتی طولانی به آن عقیده داشتند یا نه؟ گزاره‌ی صحیح گزاره‌ی است که ممکن نیست از نظر اقلانی رد شود. گزاره زمانی درست است که نتوان آن را ابطال کرد. در غیر این صورت، هرچند عده زیادی به آن معتقد باشند و هرچند آنها افراد بزرگی باشند، این گزاره حتما نادرست است و حق داریم به آن شک کنیم. روش سقراتی برای تفکر یک. گزارهای را بیابید که مطمئنا جز عرف عام خوانده می شود. عمل شجاعانه عقب نشینی در جنگ را در بر نمیگیرد. با فضیلت بودن مستلزم پول داشتن است. دو. یک لحظه فکر کنید که این گزاره به رغم اطمینان فرد مطرح کننده آن نادرست است. به دنبال موقعیت یا زمینه هایی بگردید که این گزاره در آنها صادق نباشد. آیا میتوان شجاع بود و با وجود این در جنگ عقب نشینی کرد؟ آیا میتوان در جنگ پایداری کرد و با وجود این شجاع نبود؟ آیا میتوان پول داشت و با فضیلت نبود؟ آیا میتوان بی پول و با فضیلت بود؟ سه اگر استثنایی پیدا شد تعریف باید نادرست یا حداقل غیر دقیق باشد میتوان شجاع بود و عقب نشینی کرد میتوان در جنگ پایداری کرد و با وجود این شجاع نبود میتوان پول داشت و کلاهبردار بود میتوان فقیر و با فضیلت بود چهار گزارهٔ اولیه را باید مختصر تغییری داد تا استثنا نیز شامل شود شجاعانه عمل کردن ممکن است هم عقب نشینی و هم پیشروی در جنگ را شامل شود. افراد پولدار را فقط در صورتی می میتوان با فضیلت شمرد که پول را از راهی فضیلتمندانه به دست آورده باشند. و بعضی افراد کاملا بی پول را میتوان با فضیلت دانست اگر در شرایطی زیسته باشند که با فضیلت بودن و پول درآوردن غیر ممکن بوده است. پنج اگر بعدا کسی برای زاره های اصلاح شده استثنا هایی بیابد باید این فرایند را تکرار کرد. حقیقت تا جایی که برای انسان قابل دسترس است در زاره نهفته که ابطال آن ناممکن به نظر میرسد. اگر بفهمیم چیزی چه نیست؟ می توانیم تا بیشترین حد ممکن به درک چیستی آن نزدیک شویم. 6. سماره تفکر، آریستوفان هرچه چه به کنایه بگوید برتر از سماریه شود است البته شاید بتوانیم بدون فلسفیدن به حقایقی برسیم بدون پیروی از روش سقراتی ممکن است دریابیم که افراد بیپول را میتوان با فضیلت خواند اگر در شرایطی زیسته باشند که با فضیلت بودن و پول درآوردن ناممکن بوده یا اینکه عمل شجاعانه ممکن است عقب نشینی در جنگ را نیز در برگیره. ولی در این صورت در معرض این خطر هستیم که ندانیم چگونه به مخالفان خود پاسخ دهیم مگر اینکه ابتدا به طور منطقی به مخالفت ها فکر کرده باشیم ممکن است افراد برجسته و قدرتمند به ما بگویند که پول جزء ذاتی فضیلت است و تنها زن سفتان در جنگ عقب نشینی می کنند و به این وسیله ما را خاموش سازند در صورت فقدان استدلال‌های مخالفی که به ما قدرت می‌بخشند، مانند نبرد پلاته و ثروتمند بودن در جامعه ای فاسد، مجبور خواهیم بود با بی‌حالی یا بی‌حوصلگی بگوییم که احساس می‌کنیم حق با ماست، بدون اینکه بتوانیم چرایی ای آن را توضیح دهیم. سقرات، باور درستی را که بدون آگاهی از چگونگی ارائه پاسخ عقلانی به مخالفت‌ها بدان قائل باشند، عقیده درست میدانست و آن را در تقابل با معرفت قرار میداد که نه فقط شامل آگاهی از چرایی درست بودن چیزی می شود بلکه آگاهی از چرایی نادرست بودن بدیل های آن چیز را نیز دربر می گیرد در این تقابل عقیده درست سبقی منفی داشت او این دو صورت حقیقت را به آثار زیبای دایدالوس پیکر تراش بزرگ تشبیه می کرد حقیقت حاصل از شهود شبیه مجسمه ای است که بدون اتکابه پاسوتونی بیرونی برپا شده است باد شدید میتواند هر لحظه آن را واژگون سازد ولی حقیقت مبتنی بر دلایل و آگاهی از استدلال مخالف شبیه مجسمه است که با مفتولها ها و تنابهای مخصوص در زمین محکم شده است روش تفکر سقراطی به ما راهی برای اصلاح باورها را نوید داد راهی که در آن می حتی در صورت رؤیا روی با طوفان احساس اطمینان واقعی داشته باشیم